و یاد کنید الله را در روزهای شمرده شده پس کسی که شتاب کند و در دو روز اعمال را انجام دهد پس نیست گناهی بر او و هر که تأخیر کند پس نیست گناهی بر او این البته برای کسی است که پرهیزگاری کند و پروا کنید از الله و بدانید همانها شما به سوی او گردآورده میشوید و منان الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو العدل خصم و از مردم کسی است که به شگفت میآورد تو را سخنش در این زندگی دنیوی و گواه میگیرد الله را بر آنچه در دلش است. حالان که او سخترین ستیزندگان تیزندگان است. و اذا تولا سعا فی الأرض لیفسد فيها و يهلك الحورث والله لا يحب الفساد. و هنگامی که از پیش تو بازگردت میکشد در زمین تا فساد کند در آن و نابود کند کشت و نسل را و الله دوست ندارد تبهگاری را و اذا قیل له اتقی الله اخذته العزت بالاثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد و چون گفته شود به او پرواکن از الله وا میدارد او را خود بزرگ بینی به پس بس است او را دوزخ و به راستی بد جایگاهی است و من الناس من یشری نفسه بتغائر امرضات الله والله را و از مردم کسی است که می فروشد جانش را برای جستن خوشنودی الله و الله پرمیر به حال بندگان است. یا ایوها السلم تابع خطوات الشیطان اننه لکم عدو مبین ای کسانی که ایمان آورده اید درایید در فرمانبری الله همگی و پیروی مکنید گام های شیطان را همانا او برای شما دشمنی آشکار است و بعدما جاءتكم جاءتکم البینات فعلمو ان الله عزیز حکیم و اگر لغزیدید پس از آن که آمد برایتان تان نشانه های روشن پس بدانید همانا الله پیروزمند سنجید کار است هل ینظرون تأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائكة وقضی الأمر وإلی الله ترجع الامور آیا انتظار دارند جز اینکه بیاید نزدشان الله در صایبانهایی از ابر و فرشتگان هم بیایند و یکسره شود كار و به سوی الله بازگردانده می شود کارها